یا در اسکندرنامه یه داستانی داره داستان اشرت کردن اسکندر با کنیزت کی بعد به سال اینا رو میگه میگه که من دو چی میخونم بگیم چه حد زیباست. میگه به بر در گرفتن سمنسینه را در مهر برداشت گنجینه را نخورده میدید رومشنگو با یکی باغ در بسته، پرسیب و نار، نچیده گلی، خاربرچیده ای، به جز باغبان، مرد، ناو دیده ای، همطور ادامه میده میره خیلی غیلی توصیف های زیباده ولی اینجا دیگه برای یه خانم که یه شخص و فردا عروس نور میخواد بیاد دیگه میدیش از این نواد که وقت سرد کنه صدفی مهر بسته بردار او مهر برداشتند و گوهر او بود تا وقت روز در بر من پرز کافور و ماشک به من میدونید که کافور جای درخت برخت گرم که میارن و بوی خوش ده روز او چوبخت من برخاست. ساز گرمابه کرد یکی راست اینجا گرمابه رو باید خدمتون بگم که این آوه هیچ نفتیه آب نداره آوه یعنی گمبت ساوه بوده سه آوه یعنی سه تو گمبت شهر سه, گمبت. سه گمبتان یا آوچ سر رای همه دون آوه یعنی گمبت اما داشته دیداشته که گمبتش مشخص دید گرم آوه یعنی بنای گمبتی شکلی که توش گرمه نه اینکه آب گرم توش هست خیل بنای گمبدی شکل گرم ساز گرم آفه که یکی جاست گوصلگاه هم گوصل یعنی شد گاهش مکانه گوصلگاه هم به آبدانی کرد که از گوهر سرخ بود از در زرد میگه جایی بود خزینه بود حالا بعد اینا همه ناپدید میشه چیز پریان و ایناست می گرفتم خزینه ای که طلا داشت و چه بود و هم بود و اینا ولی بعد بعد چنده گیم روز رو سبزه گرفته خوابیده خیشتم را به آب گل سستم در کلاه خود کمرچ و گل رستم آمدم زن نشادگاه برون بود یکی یک ستاره بر گردون یعنی صبح داشت می دمی دیگه ستاره در آسمان کم دیدم چنین روشن ترین ستاره ها فقط دیده در خزیدم به گوشه ای خالی فرض ایزت گذاردم حالی آن عروسان و لعبتان سرای همه رفتند و کس نام به جای لعبت اصلا به معنی عروسکی و لعبت باز چون لعب یعنی بازی لعبت یعنی بازی که به شکل عروسک و خیم شب بازی رو بهش میگن لعبت باز ما لعبت و فلک لعبت باز از روی حقیقتی نه از روی مجاز که مال خیام یک چند بر این بسات بازی کردیم رفتیم به صندوق عدم یک یک باز عروسک هم شهرپزی میگه و لعبت بازم اون شخص منتظری هم شهرپزی لعبت معنی عروسک ولی به معنی زن خوشگلم توان است دیگه آن عروسان و لعبتان و سرای همی رفتند و کس نمان به جای من بران سبزه مانده چون گل زرد در لب مرزار و چشمه سرد من اونجا بودم تنها و سرنهادم خمار می در سر بر گل خوش با تر ترکلاله یعنی کاکل و قسمت جلوی مو نسیم در سر گل بشکند گل اولی سنبل از میان چمن بوی آن گلاله برآمد شعر حافظی میگه نسیم کاکل سنبل روی سر گل میشکنه وقتی که بوی زلف یار بلا. نسیم در سر گل بشکند گل اولی سنبل چو در میان چمن بوی آن گلاله برآید خمار می در سر بر گل خوشت با کلاوله تر خفتم از وقت صبح تا گه شام ببین چقدر قشنگ وقت میدار و پاجه خفته به کام. آهوی شب چو گشت نافگشای یعنی بوی نسیمه اولا بسیاری از گولها عطرشون در شب پرگند. گلی من سراغ دارم که اصلا در پاکستان اینا بود اینجا گاهی دیده میشه به نام محبوبه شب گلای ریزی داره و عطر بسیار شدیدی که تا 100 متر این بوی این موسکی میزنه بیرون هر چند لحظه یک بار این ترشتوه پرچیز میکنه عطر عطر عجیبی اینو در هندوستان و پاکستان ها بهش میگن رات کی رانی رانی یعنی ملکه، رات هم یعنی شب رات کی رانی یعنی ملکه شب که در تارسی ترجمه کردن محبوبه شب و حال بسیاری گلا شب پخش میشه و روز اصلا عطش نداره اینی که میگه که آهوی شب نافه گشه ها شد یعنی بوی خوش پراکند آهوی شب تو گشت نافه ها صدفی شد سفهر قاوی سای این آهو که در سانسکریت هست آسو و این در فارسی آهو این آش جوز کلمه است و اسم اون حیبونه و همون آهوه اون آهوی به معنی مرکب از ای نفیه چون ا در پهلوی است در فارسی نیست ا به معنی منفی داره اهو یعنی ناخوب آهو اهو یعنی ناخوب که بعضی برشن هم مرداد و ما موردات مرداد در پارسی مرداد بوده از دوره قبل از سعدی و دیگرون رو همه از قدیمی سعدی میگه که قله مرداد محدوده که از تیمار رده خاطر آسوده مرحوم که مرحوم رو کیخسرو زردشتی که وکیل مجلس بود و کارپرزاز مجلس بود و یه قدری یاد بلد بود نه در حد علمی در حد همون مسائل دینی زردشتیان به نظرش رسیده بود که این مرداد در اوستایی عمر اسم فرشته ای است یعنی نمردنی اون اش ای نفت در فارسی این ای نفت اصلا نیامده هیچ بنابراین عمر در فارسی مرداد ارباب که خواست رو فکر که مرداد که خیلی بده آخوان فرشته مرداد یعنی مردنی چون کارپرداز مجلس بود و مئلس یه تقویمی هستال چاپ میکرد برای اولین بار او برداشت اون ماه و اسمشو گذاشت امرداد پکه همینجور پشت هم حالا بمیدیستن امرداد و امرداد تو فارسی والا نداریم بعدم ایرانو گذاشتن ان ایران ان ایران داریم ایرانم داریم اما نه در فارسی در ان ایران نداریم ان ایران یعنی جز ایران ایران و غیر ایران ایران و جز ایران به هر حال ای نافی داریم این زبان‌های هند و هم همه با هم قمیشن این ای نافی در فارسی معنی میده اهو یعنی ناخوب این اهو هم که اهو هست. شما هر ای رو در هر زبانی که بگیرید یکی یا دو تا معنی رایج چه همه بلدن باقیمانش بلد نیستن باید بریم تو فرهنگ میره کین خود شما براش میپرسن گفتن دیگه از گفتن که لغاتی آسون‌تر نمی‌دین تو ها یه معنی گفتن آوازخوندن شما 100 سال در زبون پارسی حرف می‌زنید در مملکت خودتون یک بار ممکنه یه جو گفتن رو من آوازخوندن به کار ببرین یا از کسی بشنوین اینو بعدین سرکلوس ادبیات یادت یه معنی دیگه گفتن معتقد بودن میگه گروهی به جبر گویند و گروهی به تفبیز یعنی بعضی معتقد به جبرن بعضی معتقد به تفبیزن این معنی در زدن که به کار نبیره معنی عدبیست و سر کلاسی همه لغت بدون استثناء همی ترتیب و همین ترتیبه مرحوم این شاید 20 تا معنی برای کلمه آب آورده یه رجوع خیم ورحک پنگ محین آهوی شفت تو گشت نافه گوشای راجع به نافه مفصل حرف زدم و نافه و, و این من خواب شد سفه رقالی سای یعنی کم کم شروع کرد این که رنگش سیر بشه سر براوردم از اماقی خواب از تخت روون خواب این اماقی خواب اضافه تشکیهیه یعنی من مثل این بود که توی تخت روونی به ناز خوابیدم سر برای آوردم از اماری خواب بنشستم تو سبزه بر لب آب آمدن آن عبر چون شب دور. آن درفشان و ابر این عویر خروش این صنعتی درش که بشونگن لف مرتب لف یعنی بستن لف را. یعنی چیزی که جن... چیزی رو آدم توش می‌بنده. لف یعنی بستن، نشت یعنی باز کردن یعنی یه دور می بندن، یه دور ماه کن مرتبان را داند که دو لفت آورند دو, دو معنی لفت اول به معنی اول، لفت ثانی به معنی ثانی این لفت کنشت مرتبان نمونه ایم یعنی که خیلی می آوردن در کتاب های مقدماتی ادب اون سه بیت فردوسی بود، دو بیت به روز نبه هردان به شمشیر و خنجر به گرز و کمن برید و درید و شکست و بست یلان را سر و سینه و پا و دست یعنی به شمشیر گرید سر یلان به خنجر درید سینه یلان را به گرز شکست پای یلان را به کمان بست دست یلان این نمونه کامل لفنش نگرد آمد آن ابر و باد چون شب دوش این دور افشان و آن عبیر فروش. باد می رفت و ابر می افشان می رفت جارون کرد این سمن کاشت من پنفشه نشان یعنی بوی خوش نمی جا پیچی. چون شدن آن مرزار انبر بوی آب گل سرنه ها جوی به جوی یعنی آب معتر توی دوی بارها به راه افتاد لعبتان آمدند اشترساز اینجا لعبت منی زن سیزاز لعبتان آمدند اشترساز آسمان گشت باز لعبت باز اینجا آسمان بگه لعبت بازه یعنی همون بازی نمایش خودش شروع کرد قیم شعبازی شوری کرد تختی از تخته زر آوردن تخت پوشی ز هر آورد چون شد انگیشته سریر بلند بسته شد بر سرش به پرند، پرند میار آراختند سلطانی زیبر باز جمله نورانی شور آشوبی از جهان برخاست، بانوی زیبا رئیس بانوان داره میاد و خب خوشو،, خوشو در صدا شور آشوبی از جهان برخاست، آمدندان جماعت از چپورا در میان آن عروس یغماوی برده از آغشقان شک باوی بر سر تخت شد در آب تخت از اون رنگ نقاه ها بود. اینجا دو تا کلمه رو باید بگم یکی یغماست یغما به معنی قارت که شنیید اون مطلبی نیست که من اینجا بر شما. در ض یغما اسم یکی از شهرهای های شهرهایی که معمولاً گلام و می آوردن و معمولا اینا معمولاً در قسمتهای جنوبی چین بود البته از جاهای دیگه هم می آوردن به همین دلیم اونجا هم هست مثل هند که گفتم که ارزون بها ترین گلام و کنیز را اونجا می آوردن مثل زنگبار که سیاه ها را اونجا می آوردن مثل روم سقلاب بلغار اینا بود اما بیشتر شهرهای چین بود که خود چین هم خیال میکردن که شهر چین بود، خطا بود، ختان بود، خلوخ بود، خرخیز بود، حصار بود، خمار بود، یقما بود، کشمیر بود، سقلاف بود که صورت عربی شده کلمه اصلافه نی روسیه بلغار بود یه ساختمونی بود ساختمون بسیار زیبای افسان به نام نوشاد در روش نرش های خیلی زیبا داشت ولی بعدها خیال میکردن که نوشادم مثل یه شهری برای اینکه می گفتن لبت نوشاد یا بط نوشاد یعنی زن خوشگل که شبیه اون تصویر نوشاده. نوشاده. هر حال نوشادم جزء محله حتیز هست، بازم هم هست که حالا الان در ذهن من نیست. یقما در میان آن عروس یقمایی یعنی اهل شهر یقما میان آن عروس یقمایی برده از آشغان شکیبایی بر سر تخت شد قرار گرفت تخت از او رنگ نو بحار گرفت نو بحارم باید توضیح خدمتون بدهن بحار سه تا معنی داره یکیش همون فصله یکی معنی شکوفه است. که همزمان به کار میره شکوفه درخت مرکباتو حتماً میگن باار کرده میگن مثلا نارنج بهار کرده به جایش بهار نارنج جن شکوفه نارنج یک کم شکوفه است و یکی دیگه یک کلمه است که هیچ ربطی به این باار نداره بلکه پسرخاله کلمه بخارا است بخارا این در پهلوی بوده ویهاره ویهار از یه طرف شده بخارا از یه طرف شده بحار اسم محله و معبد بودایی ها رو پیش میگفتن بهار و نوبهار و بودایی ها عادت داشتن که معابد شما به انواع و اقسام زینت ها آرایش بدن گل و گیاه و وساط و مجسم های مختلف بودا و خیلی آراسته بود و محروف ترینشون نوبهار بلخ بود که در شاهنامه میگه که لورانس پرخته بود برای عبادت به نوبهار بلخ و در اونجا بدکشک شد و چشم کشم کنم که این معبدها ها چون آراسته بود خیلی این که میگه تخت از اون رنگ نوبهار گرفت یعنی وقتی اون زنه و اون زیبایی آمد این تخت نشست این تخت مثل نغبهار مثل نغبهار برفت مثل معبت های بودایی آراسته شد برتر تخت شد قرار گرفت تخت از اون رنگ نوبهار بود این تم اصلی قضیه است اصلا داستان این است که دعوت میکنه طرف رو به صبر و همه اهل اون شهر رو همجور دعوت کرده یکی شب دوم، یکی شب سوم، یکی شب پنجم، یکی شب دهم، ده یکی شب بیستم به لخره انعان طوت دست رفته و رفته تو سبد. حالا این یکی از اون سناست میگه که آمدم شب دوپم طرف هم راه میدهید. در این حال میگه که سبور باشو میگه باز فرمود تا را جستن جستن یعنی تجسس کردن و پیدا کردن نیافتن باز فرمود تا ما را نامم از لوح غایبان شستن رفتم و برسریر خاندن هم به آین خود نشان دارم هم به ترتیب و ساز روز دگر خان نهادند و خورد آب بر سر اینا رو می‌بینید که نظامی که داستان سرای بسیار چیز دستیه یه دفعه اینا رو گفته قبلا تمام هنرش همونجا به کار برده دفعه بعد میگه که همونجوری بود که پیشا گفتم دراز سخنی بی معنی هر ابای ابا و با یعنی آش الان به صورت شوربا دارید یعنی آش که چاشنیش فقط نمک ولی در قبی جوجه یعنی آش جوجه استیک یعنی آش سرکه زیر دا یعنی آش زیره و شاید موارد دیگری اینا در ادب فارسی هست با و ابا یعنی آش و سنائی در اون قصیده بی جواب بی نظیرش مکان در جسم و جان منزل که این دو نست و آن و قدم زین هر دو بی اون نه نه اینجا با و نه آنجا سخم که از بحر حق چه ابرامی چه سوریاوی مکان که از بحر حق چه جا بلغا چه جا بلسا توی اون قصیده میگه که ازگرد عزت همی باید به سهراغ قناعت شد که آنجا باغ در باغ است خاندرخان و با در باغ یعنی انواع است. هر عبایی که در خورد به آشایی که مناسب این بود بود داورد در خورنده رنگ نشات ساختند آنچانون که باید ساخت یکه همه چیز سر جای خودش بود بهترین صورت ایزا با هم مناسب اون طوری که باید چون که هرکس از آن خورش پرداخت وقتی خوراک تموم شد گفت فردوسی یه پیتی داره که بارها هم تکرار میکنه چون نان خورده شد گفتم یه دفعه که هنوز افغان میگن نان خوردی یعنی غذا خوردی نان خورده شد یعنی غذا خوردی چون نان پرده شد مجلس ها راستند، می و رود و رامشگران خواستند، این همون. چون که هرکس از آن خورش پرداخت، می نهادند و چنگ ساخته شد، از زدن رودها نواخته شد رود اینجا طبعا حالات موسیقی نوش ساقی و جام نوش گوار، گفتم یه بار که نوش معنی شیری نوش ساغی یا جام نوشتوار گرمتر کرد اشبابازا شراب یه خود پدیداونده عشق دیگه مشات و هیجان و اینا رو زیاد میکنه یه خود پرده شرمون از این بر میداره اگر کسی چیزی هم در دلش داشته طور که من رحمت آشکارا کرد هندوی خیش را مدارا کرد رغبت افسود در نواختنم، دستی سرم کشید، مهربان شد به کار ساختنم، حالا ببینید، کرد شکلی به غمزه با یاران تا شدند از برش پرستاران، یه جولی اشاره کرد که اون خدمتگزاراینا هم برند و دوتا رو تنها بذارند. خلوتی آنچنان و یاری نغز تا هم در افتاد به مغز میگه اون، حرارتی که در دل داشتم که اونجا پنهان بود آمد در مقص یعنی آشکارا شد دست بردم چه زلف در کمرش در کشیدم چه عاشقان به برش پشتار گفت هان هان عدات تنبیه یعنی مواظب باش گفت هان وقت بیقراری نیست شب شب زینهار خاری نیست گفتم زنهار وعنی امانه وعنی پناه زنهار دادن یعنی پناه دادن و امان دادن زنهار خوردن قول خود رو شکستن میگه که امشب شبی که تو زیر قولت بزنی نیست شب شب زینهار قاری نیست گر قناعت کنی به شکر و خند گاز میگیر و گوسه در میبند به قناعت کسی که شاد بود تا بود محتشم نهاد بود این ارز کردم این تن است داستانه وان که با آرزو کند خیشی افتد آقابت به درویش درویشی یعنی فقر و بیچیزی البته معنی تصوفم هست او معنی سانویشه معنی اولش درویش یعنی بیچیست و این با کلمه دریوزه از یک گیشه هست میگه من گفتم من طاقت ندارم گفتمش چاره کنز بهر خدای کابم از تر گذشت و خار است با آب گستم گذشت خارم از پام گذشت یه نوع خاری در بیابانهای مکه هست که بشه میگه خار مقیلان مقیلان مخفف ام قیلان قیلان جمع قوله ام قیلان یعنی مادر قولها کم کم ام غیلان شده مقیلان و در افثانه های عرب هست که قول زیر این بوته های خار بچه میزن چون بیابونیست که سالها ها میذاره یک خطر بارون نمیباره و این ریشه این خار باید بره چندین متر تو زمین تو یه ذره آب در بیاره به همین دلم به جای برک خارهای نکتیز داره به همین اندازه انگشت من و سخت به قطری این خارها سخته که اگر کسی پاشه بذاره روش از تخت کفشنی بالا از کف پام میاد بالا، از پشت فاسرش میاد. گفتمش چاره کن بهر خدای کابم از سر گذشت و خار از پاب هست زنجیر زلف چونگوی گرت. من ز دیوانگان زنجیر گرد میگیم زودتران زنجیر کن برای که اگر من زنجیر نکنیم من مثل دیوانگان آشوک را میدیسم در به زنجیر کن تو را گفتم تا تو زنجیریان نیاشبتم زنجیری به معنی دیبونه خطرناک تا تو زنجیریان نیاشبتم شب به آخر رسید و صبح دمید سخن ما به آخری نرسید میگه هنوز صوب نشد در حرف میزنیم می یا صبح صوب داره ما حرف رو مثلا آخر پیده نکره گر کشی جانم از تو نیست داری ایگنک ایگنک سر آنک آنکتی این همه سر کشیدن از پیچیست گل نخندید تا هوا نگریست جوی آبی آب جویت من خاکی آب دست شویت من تشنه ای را که او گلو ده توست یعنی گلو میذاره در اختیار تو که ببری آب در ده که آب در ده توست ندهی آب من بقای تو با، یعنی نمیخواد بدی هم شما کم بقای شما باشه ندهی آب من بقای تو باد. آب من نیست خاک پای تو باد خاکی را بگیر که برد نگه فرض کن که یه خاکی حالی لیوان آبم برد طوری نمیشه که آبجوی در آبجوی مرد قصره ای را به تشنگی مگداز تشنه ای را به قطری به در فتاده گیر به شیر اینجا دیگه درست از وسال دم میزنه رتبی در فتاده گیر به شیر سوزنی رفته در میان حریر اما اگر میفرمایید نه گر این از کار تاخیزم خاک در چشم آرزو میزن میگه اگرم غیر از اینه بفرمایید من مرخص بشم. یار در زم نازکشم هست. میخواد ولی نیاز عاشقانه رو میخواد. زود عاشق خیلی با عجله رو دوست نداره. در این حالم نمیخواد قرد کنه بره. این است که میگه اگر چیزه من برم مرخص بشم. مرخی انگاشتم نشست و پرید. نه خر افتاده شد نه خیلی کردی. خانی اومده نه خانی, خانی رفته. پاسخ هم داد که خوش باش باز دل داره میگه امشب فعلا خوش بگذارون شب شبتیست بوده آقش باشه نحل در آتش گذاشتن جز کارهای جادییست که قرنها ادامه داشته تا روزگار ما و حتی همین الان هم ادامه داره وقتی کسی یه مسافری یک کسی در سفر داره، یک دور ای داره یکی از کارهای جادویی که میکردن، یه یک دعاهای چیزایی روی نهل می کندن یا می نوشتن یا ترتیب میدادن و گفتن که این نعل رو که بگذارن تو آتیش و این داخشه دل اون آدم به شور می و به هر ترتیب از خود کن می رسون. حافظ میگه که در نهان خانه اشرت سنمی خوش دارم که تر سر زلف و روخش نعل در آتش دارم یعنی روخش مثل آتش زلفش هم مثل نعل نعل میذاشتن در آتش که گنگشته بیاد میگه تو امشب بتونی نهل تو آتش باشه پاسخ هم داد که امشبی خوش باش نهل شب دیز در آتش باش شب دیز یعنی عصب سیارن عصب میگه مثل شب سیار در شبی این خیال گردی دور یا بی از شم جاودانی نور اگه یه ذره خودتو جمع بکنی و این خیالات باطل به این سرعت به خود راندی وضعت خوب میشه چشمه ای را به قطره ای مفروش که این همه نیش دارد آن همه نوش در یک آرزو به خود در بند همه صاله و خورمی و یه چیزو فراموش کن باقی همه در اختیارت مرد حسابی بوسه میگیر و زرز میانداز نرد رو با کنیزکان میباز نگفتم بازم تونه هر شب یکی هست باق داری به ترک زاق بگو، مرغ با توست شیر مرغ مجون میگه مرغ که در اختیار تو چرا شیر مرغ ازش میخواه ببینید شیر مرغ از کی هست 800 تونسد کام هست و کام هست در خیانتگری چه آریده هست امشبی با شکیب ساز و مکوش دل پنه بر وظیفه شب توش به همون مقراری دیشب امشب راضی باش من از این پایتون به زیرایم هم به دست دارم ارچه را. یه وقتی کار کاشد به هر حال من دیر به دست میام اما به هر حال به دست میام ماهی از حوضه خوش به ماه را دیر تر برسته از خوض ماهی میشه گرفت ولی ماه که بخواهی میگیری یه قدر